به نام خدا صحبت میرسه درباره باری مسئله ربا رباخواری یا نوزوخوری به زبان مدر مسئله بانک و بانکداری و پریده هایی که از این موضوع پیدا شده مثل تورم ایرانی به این مسئله میخوند اشتایم که این بحث شاید یکی از غیر تخصصی ترینه که من تا با در کار کردم، صحبت کردم یعنی برای شخصا شخصاً نه الاغاز فکری نه الاغاز حکمی و نه الاغاز تجربی با پردیده بسم ربا، بانک و بانداری فرقایی نداشته مجده حتی به عنوان نیاز شخصی هم بنده هرگز در عمرم هم به بانک نیفتاده و پنیده باسم بانک و ربار رو شخصا ولی به عنوان شاهد چه به اصلا بهتر روشی مسئله رو کرد چه به اصلا که به یک مشکلی مواجه هستن خودشون در اون مشکل غرق چه بسا یک نفر دیگری از خانیج از بود این مسئله متر بسونه اونو ببینه. هم همجاکه یک بیمار حتی اگر خودش هم باشه وقتی خودش بیمار شد آجز از درک و تشخیص و درمان خودشه. و چه بسا پیدشکان که خودشون بیمار میشه هم به یک دیگه. حالا هستم که این موضوع از زبان بنده یک بحث خارج از تخصص و تجربه هست شاید به عنوان است و نقاط ما ببینیم که چه بحثا متخصصی عمل هم رو نمیدونن که سالهاست که ما شاهدیم توی کشور خودمون شبان روز در لسانه ها در ربا و تورم بحث میشه و نتیجه این بحث این اینه که رو روز به روز و تورم افضلطه میشه پس این نهیزه میگیریم که بحث های تخصصی در این باب هیچ واسطوری نداده هیچ راحلی نداده و هیچ کاری نکرده بعض بدتر هم شد اتفاقا که فقط بحثای تخصصی در باره بانک و ربا و فقط توجیه ربا و ربا های انجام میده و این رو هی تقریبی سیاره هم. همطور که شاهدیم حتی این موزه بسیاری از علما دینی و مراجع حتی ربا رو توجیه می کنند مثل بیمر رو حتی تقلیسم می کند بسیار از علمای دینگیما حتی خارج جا بسید خب ربا یک کلمه دینی به واجه قرآنی هست ربا در لغت خودش در لغت عرب به معنای زیاد خواهی طلبی به بیان دیگه به معنای هرسه یعنی طلب و خواهش افسون بر نیاز هست الازم معنایی ربا میشه شده زیاده بودی از تاریخی هم ما که منشه ربا و رباخاری و به بایان این بانک و بانداری بلی اسرائیل بودند همطور که از تاریخی حتی گفته میشه که بانی پول و اختراع پول و رضا بانک و بانکداری هم بنی اسرائیل بودن. شاخه از بنی اسرائیل بودن. همونطور که امروزه ما میدونیم بزرگترین بانک های جهان، بانک های سهنیستی هستند و امروزه ما میدونیم که جهان رو بانکدارا در دست دارند سرنوشت ملید در غصت بانک داره است نگاه کنید مشنونی خرباره در جامعه ما چطوره سرنوشت دینی و دنیوی اکثریت قدید به اتفاق افراد توی جامعه هاییا به بانک بس, بس یا نیست هستیم به بانک بس دسته جانه جهان دوله دولت ها و ملت ها سرنوشت ملی و و تاریخیشون وصل به بانک های بزرگ سرنوشتی در اروپا آمریکا. یکی از علت بدبختی های بزرگ کشورهای جهان سلموم هم بدهکاریشون به این بانک هاست تمام کشورهای جهان سوم الان تا خیر به این بانک های بزرگ به نومردی که اکسرش هم هستن به برای همین هم نانگر راحت میتونن در سرنوشت ملی حکومت ها دولت دخالت کنن حکومت نبت کنن پودس ها کنن برای حیاتوستیشون در دست بانک هاست در حقیقت میشه گفت همپیویلیزم که میدیم این روزه همپیویلیزمی جانی بانک ها بیمه و بانک ها. با شرکت‌های بیمه به مراتب محلطتر خطرناکتر و پیچیلیتر از خودی بانک ها آمدیم پیشتفته ترین حد بانک و بانک داری و نو روزو کنیم بیمه ها هستن. ما در باران یه واقعی رو میخونیم در کرد که اصولا از تاریخی ربا از کجا میذار شده و بر اساس چه منطق و استدالی ربا توجیه و شده داستان بنگ اسرائیل رو میخونیم در قرآن که قوم یهود وقتی از اصارت فرعون و فرعونیان بیاری حضرتی موسار نجات پیدا کردن از بردگی و همراهی حضرتی موسار را افتادن رفتن به سمت سرای سینا سالها حتی میگوند چهل سال در بیابان ها و در کبیر به بلهود سرگردان بیدن بلهودی ارزد موسا که در این دولان اینها به موجزه الهی و در ارزد موسا تغذیر کردند. و در روایت داریم این هم در قرآن هست که یک ابری در تین سالها بر بالای سرشون در کبیر سینا بود که اینا سایی داشته باشند که آفتاب نست بزنیم و در تمام مدت از آسمان از بهشت به چند نوع قضای بهشتی میمد که بنیستایی مستفت میزدن این در باران اومده بخشش ولی چند سال که این بنیستایی ات بدبختی و گشنگوی و صرف رو پردگی پیدا کردن کم کم خوشی دیده دیلشون رو زد بقاید معروف و اومدن پیش این گفتن این مستفاقه ما گوسته همون این دو سری قضایی بیشتری از بهشت میاد حال اون ما به همون خورد خوردیم دیگه چیزا چوبه ی چیزی یک مخلفاتی چیز دیگه اینا در سوسی خیار شور و سس مایونز و زبده و ترشی چیزی مثلا هم باشه هم موضوع نمیده، حال نمیده که اسم این قازا اون تو قرآن هست اما به نظر من مستثنا از بهشتی بوده پاک متحر و هم میخوردن شدن. من این کلمه‌ای میخوردن سی میشدن ولی من گفتم کافی نیست. که ما واسه غذا بیشتر از این بخوریم هیچ چی یکم می‌خوریم سیر میشیم چه معنی داره فاین فای اینگونه بود که کفران قوم بنی اسرائیل و از همین جا ربا شون شروع شد. شد. من به قرآن می‌خونم ببینید، زیاد طلبی ببینید، ما کوتی ربا این زیاد طلبی،, زیاده طلبی از چه شکل ربا دار و ربا دار قوم داریم که یه بار اسرائیلی گفتن که ربا همین دین تجارت است، میگن چه نشد اجازه؟ یه گناه بیه. دین که داد و ستاده، دینو بازرگانی است. و بعد مثلا پیروان ناس که اینها این فکر روا از اینجا در اومد از منشأ شکل و سور زن به خدا در اومد از یک طرف دیار در بود از یک طرف دیگه در قرآن هست که قده از این بلی اسرائیم گفتند خدا تستش پسته است یعنی اینکه دیگه نمیتونه بیشتر از این رزق ما را اضافه کنه به ما رزق بده رزق رو تقسیم کرده در رزق از که روزی ما بیشتر از این نیست بیشتر از این بریم، خودمون یه فکر بکنیم، یه فکری دیم، نخترین فکرم ربا بود ربا غباب کنیداشت بود از یک طرف از زیاده طلبی نفس، زیاده طلبی نه بر اساس نیاز، نه به حساس حوثوازی و به حساس بلهوثی و طرف دیگه توی زنی به خدا، اینکه دست خدا بسته هست، خدایی که نمیتونه مارز بوده، پس ما بس بریم کاری بکنیم، تلاش باسه بکنیم این رویشه پیدایش ربا در قرآن هست خب و زندگی مدرن دیگه خودمون رو ما میبینیم که واقعا ربا از زیاد سلبیه از نیاز نیست واقعا از زیاد خواهیست از فرسه یک کس میخواد داره از بگیره یا از بانکی بره یک ربایی بگیره این مسئله گوشنی مونم دارم این که بی سرفان هم باشه اینها واقعا نیست شده باشه واقعا زیاده طلابی من زیاده طلابی این رو به دامی مقتلال میکنه که همه با آراد فرور شما نگاه این روزه کسی رو می شناسید. آتش غبا و این غبام ها مقتلال نباشه شما اگر این بخش عظیمی از دردقه ها استرس ها نیگرانی ها کابوس ها هزیان هایی که در بلند مدت تبدیل به افسوردگی تبدیل به جنون و تبدیل به جنایت میشه برخواسته از ابتلاعی به روائه داره نمیخونه چه بانکیش چقدر بانکیش حالا در بانک اسمش رو کاموز میزنن اینا دیگه کلاه شهریه بگه درست کردن قبلا مالیادمون میاد تو بازار هنوزم هست کسی که میمد نزول بگیره یا مثلا میمد آقا این دو میلیون تومن رو نزول بهم بدمیدم اون بازاریه میگفت خب ببین اون بهره رو مثلا دو تو من بعدش میتوند واسه هستان دویز من. این کپیز رو بگیر یا این خودکار رو این دو میلیتان قیمته شما به من دادی آه اینو دو من این هم این, این دو مال تو این کپیز مازور این دویز من منم بعدش این مال من ببین من معامله کردیم این کپیز رو دو به دویز داخت شما بنافر خودتیم من نزول به شما نگیرخدم ها اینجا استفرالله خدا رو خیل حساب کردن دیگه تا دیگه نمیشه گفت دیگه مکره با خدا دیگه نیست. این اصلا خدا رو احمق آدم حساب کردن استفرالله این یعنی اینه واقعا که همچی بازی رو ما میخواییم باید این بانکداری هست و این کارموزی نیستش که این مشارکته این نمیدونم این افعال تو. در این مورد البته که حقی داشته باشه درک میکنه این چه بازی دیگ حالا در جاهای دیگه علنا دیگه بانک بانکداری علمی به حساب علم و اختصار میاد خب یکی از ما نه که ما اینا رو به حساب خدا میزاریم و میخوام کلا شیهم درست کنیم درست عذابی که ما بهش مبتلا میشیم دیگه اگر فقط عذاب دنیاییه ما عذاب اخروی هم بهش مبتلا میشیم دیگه اینو میخوایم خدا را رو سرش رو کلا بذاریم بگیم خدایا ببین فکر نکن ما اینجا دریم بهره مییریموبهره زونا در کار نیست. ببینید شما انگشت رو هر کد بذارید ببینید اصلا رو خودتون بذارید ببینید چند دستت چه بخش هایی هست تشمجوش ها، ها یه شما و نایتاً بیماری ها و جنون های شما بیشه در استرس ها و دردقه های حاصل از بهره و وام و موضوع و این اگر این و استرس ها میبرد تو این در واقع جامعه یک شبه از بهش تبدیل میشه از جهنم تبدیل به بهشت میشه اینکه در قرآن اومده که ربا آتشه در دریای از حالیس که ربا دهنده و ربا گیرنده هم دو در آتشن آتش این آتشی بوزخ تا اونطور ما در قرآن تنها موضوعی که در قرآن تنها مسئله از امور دنیاوی انسان رو که خداوند مستقیما، اون رو بیان کرده به آتش دوزخ رواهه نقد ده همی یا یه آتش واقعا ارتحاب یعنی انسان وقتی می سوزه مطقیبه بیقراره در میره آرامش نداره اونایی که سختی رو ترجمه کردن میدونه وقتی این استکان چایی دا رو پایدر مئیسی آزن دوبین مثل اسفندی رو آتیش یا کنین مردمان اون روزه همه رو آتیش هست. یعنی مقتلع به قاتش رباه از پس مرمی که ما ندارستیم خدا رو گل بزنیم که بگیم آقا این شرط بیه وگر نه نمی سکتیم این نمی انسان که قرار نداره ها؟ را از دست میده بیعقلی منشای تمام جنون هاست منشای تمام جنایت هاست خب به برای ما بیشتر در می خواهم نفسانی و معرفت نفسی ربا رو برستی کنیم که ربا در نفس انسان با انسانات ها چهار میکنه ما میخوام نشون بدیم که واقعا ربا, ربا آتشه و شوخی نیست شعار نیست آتشی نیست که در آخرت می سوزنه از همین دنیا هم می سوزنه ربا خیلی از عذاب که در آخرت بعد از مرگ، ولی خیلی از عذاب از همین دنیا میشه و ربا یکی از این هاست یعنی پر نشون میده که یکی از بزرگترین و کلیره گناهان ربا چرا؟ برای اینکه هم جامعه رو به فساد میکشه ببینید ربا خودش از ریای از ریاست بخش عظیمی از خوزونی تدمی ها مون بخاطر خاطر ریاکاری های میخوام میسی دیگه رنگلاب بدیم دیگران رو بفریدیم به صلاح عبریداری بکنیم زور میکنیم. ببین، میکن نمایی شردم درست کنیم تا بتونیم دیگران رو بازی بدیم چشم دیگران رو ببین خود ربا خودش از منشای ریاکاری انسانی و به ریاکاری مضاعق میرسیم میرسه آه؟ آه خود این رباب حالامش رو قرار رو تو زندگی میگیره حالامش رو قرار گرفت خانواده ها رو با آتیش میگشه خانواده ها رو با آتیش گرفت متداشیر میبنه خود همین برس فسخ و فوجود میاره زنا میگاره ط ما یکی از فسادهای اجتماعی ببینید پس روا خودش قیام میاره زنا میاره دروغ میاره همه اینا توش هست بیقراری میاره انواع بیماری های جسمانی و روانی میاره انواع بیماری های جسمانی و روانی میاره این رو بنده به تجربه دارم میگم حتی به تجربه درمانی خودم شاهد بودم که بسیاری از کسانی که به انواع بیماری های عجیب و غریب به که خودشون را از بانک و و ربا کشیدن کنار سلامت خودشون بازی یافتند خنوالیم اگر ما از یک گلاز ریکردار در بسیاری مخواسد اجتماعی اقتصادی هستیم علت و اینه که تقریبا تمام جامعه ما به این ربا مبتلا است. اگر بیشترین به ذکاری داریم. اگر بیشترین طلاق رو داریم اگر بیشترین اون قتل رو در محیط خونه داریم اگر بیشترین تصالفات رو تو جاده داریم همه اینا از بیقراریه از ارتحابه از درده است که جنون میاره شتاب میاره کسی که چک داره باید سر برش بده این آرامش و قرار نداره و میدونه که اون طلبکاره بانک با این نداره. میاد خونهش رو فرش شوید دیرفاش میکشه بیرون ولی این در آتشه روحش در آتشه انسان که در خودش قرار نداشته باشه این, این در آتشه در بخش عظیمی از مفاسد اجتماعی و رکوردداری ما در بسیاری از طبع کاری و فسادها منشایش از ابتلاع کل جامعه رو بلباس. تقریبا تصیر رو نمیشه به کرد که مبتلا ره و, و با پونکوام حتی هر تو زن های شدن. الان جوانایی که به معنی که به سن 20 می رسن, به سن 20 می رسن. اولی کاری که میکنن دست چک میذارن تو می زندون. این دست چک این احساس میده که میلیاردره. جیب خالی ولی میلیاردر. طرف چش باز میکنه، می, می شما نه بزرگترین مشکل قضایی رو در دنیا ما ها ساله نه کاری کرده، نه توریدی کرده، نه هیچ از همه جامعه انجام داده چش باز کرده، اینه پنجاشه هست میرمیتونند، سر میرمیتونند، دیگریز میرمیتونند بده کاره اولی جوونیش تو زندانه، زندان کجاست؟ محل آموزش انواع طبح و جنایت واسه تو یک جانی عرفهی، یک بزرکار عرفهی میاد بیرون همه اینا نتائجه رباس، بانک و چه بود، چه تورم بزرگترین جامعه ماست و کل جامعه جهانی، برای جهان مدرن، جهان بنی جهان جهانی بانکی، جهانی بنی سعودی. حالا می‌نویسیم بنی بر جهان کم‌مادی کنم. چرا بانکدار سینه است؟ صیتاری صاعی نیست، باز جهان نیست. صیتاری صیتاری نیست. بانکی. که ما به بانک بهوا بله مختلفیم یعنی در سیطره سییونیس قرار داریم و سییونیست ها دارن و روح و روان و دین و دنیای ما دارن حکومت میکنند و ما نمیتونیم در خارج از نگاری سییونیست زندگی کنیم دینمونباستی قربانی کنیم هم که دنیاش با آتش به شد دیگه دینی نداره که کسی نداره. ربا آتشیه که عقل نداره روا آتشی که عقل و وجدان رو در انسان میسووده این آتش آتشی نیست که پوست رو کش رو آتشی که وجدان رو، رو،, شعور رو، و ایمان رو خب از چی در, در. هر فساد، آدم کشی، هر جا مجراعتی دیگه از با آسانی در در دیگه که بزرگترین تمام که با بانک دارند و وان دارند میگیرند بیقراری، کلاحیگی و در همه قصه که یه ده تکک توتیبشون هست این آتیش گرفتی که رو میبینیم دقیقا میبینی که آتیش تو شروعه شونه آتش تو جیبشونه. زیری لبازشون با کنگه این این روحاملن احساس میکنیم دقیقا ببینید تورنم چطور به بوزر خب ببینید بنده ای که وام گرفتم از بانک خب یه وام گرفتم و اصلا آخر سال باست یه میتونی دویز خب من این بایستی یک سال هم بایستی یه ویدوان رو بدم و دریز رو روش بدم خب من چطور طور بایستی این رو با بیارم؟ پس من خود من هم بایستی اگر این وام گرفتم یه بقالی دارم زمین میخوام بخرم. هر کاری میخوام بکنم بایستی من خودم هم در یک کار اقتصادی خودم بایستی یک خودونی طرف یک گرام فروش در واقع یک رباخار بایستی بشم بانک داره با من این کار میکنه منم بازی با زیر دست ها خودم این کار میکنم بند بقالی هم و بسی تا یک سال دیگه یک میلیون رو بزر یکی زاخن در بیارم دیگه بدم، و اگر نه بقالی هم این مساده رو میکنم بسی جنس ها خودم رو های گرونی گرونتر و جالب اینه که ما نرشیدون کسی تا حالا وام گرفته باشه و از طریق کار و تولیدی دیگه. با این پوله وام کرده باشه تونسته باشه وامش رو باز پرداخت کرده باشه ما تقریبا نشنیدیم هنوز. ما این فکر نمکن که ایتقا رو باشه خب در واقع وام رو بال برستی با وام پرداخت کرد باز باستی. یه وام دیگه از همون با یه وام دیگه, دیگه, دیگه. خب. به این تکلیل که یه نفر یه بدون تو الان وام گرفته این آقا پنج میلیون دو دو دو بده بده. خب. قاعده ای که اینجوری که این دوزانو یا خورده، یا راست یه کاری کرده، این دکونی مثلا درست کرده یه کارگاهی رو واسه اینه که اونم که نمیتونه بپوشه بره به دیگه. میاد؟ تو باز واسه این واسه ای وام میگیره، ای وام با ما. با یک ثیل تصاووتی، اون واسه خودش جنسشو گون می‌بوشه، خدمات دار میده، خدماتشو واسه گون‌تر بده، قزغ بیشتر واسه بده، تا؟ بنابراین یک نفر که وام میگیره، نزول گیره خودش هم رباخار و رباکار میشه در جامعه و همینطور سلسله نارت به دام به میکنه این چی میشه تورم میشه زید. یکی از نمایه‌های تورم گرونی‌های فزاینده است این گرونی فزاینده وقتی همه افراد جامعه بده به بانک همه با ربا بدن همه وقتی هر کد درخواستی میکنه باعث یه دیگ دیگ بپوشه. میشه تقلب کنین که لگ بزنه ها چون نگران نباشین با صندوق کنین نداره. پس یه نفر که داره ربا میگیره خودش باز یک رباکار و رباخار میشه هایی ها؟ رفوز میشه و این هی چون مرتبا هی بازی باز وام بگیری وام بعد این تصاویی به اش میرسه این قدید. خب خدا چرا باز کشور ما جهان این روز جهان غباییست چرا کشور ما یکی از غبایی ترین کشور دنیا هست. لذا بولان زده ترین و خلافکارترین کشوری دنیا و به اعتراف خود مقامات بسیاری از خلافکاری ها رو ما در جهان رکورددار هستیم یکیش خودکوچیه رشبه همینه دیگه رشبه حاصل ما یکی از محصولات رشبه هاری. یکی از محصولات بدفار بودن به بانکه حالا دیگه اون کارمانده که جز نداره بروشه همون رشوه میگیره. ببینو همین همه همین چیز داره اگر کشور ما یکی از ربایی ترین و متورم ترین کشور جهان هستن لازی اقتصادی و همچین از لازی کارنگی درش میگه مخلی یا مفت داریم که دیده این دوستان دیده از صد خب این در خزانه دولت یا در بانکا خب بانکای ما متاسبانه ما دولتیم آه در واقع این بالا دولت در واقع میشه گفت کارش فقط رباخاریه یعنی که مردم ربا بده همینطور همه هم خوشحال دیگه پن میلون در میلون مثلا به هر بچه ای صرف میدم دو ساعته خب این کلان نفته یا مفت دست دولت دوله هم تند تند داره و مرزان داره ربا میده خونه همچون بوجه خیلی کم از کشورها دارن خب در واقع میشه گفت این نفت خودش این داده تبرونه در نخطی که در نخط دولته فقط داره و مرزان خود نفت هم ما میدونم نفت رو بودی فنان اسلام ماده اولیه جهنمی خود الگاه که خود این هست جهنمیه نفت که خودش ماده اولیه جهنمیه این دیگه جهنم, اندر. جهنم آتش اندر آتشه دیگه کلا اون کشوری اون جامعه که تولید می‌کنه در داره خودش با درامت خودش با درامت طبیعی خودش تولید می اگر در شباب وجود بیا مط چنین رشت تصایدی رو نداره شبانی رو گوید هرچه نبکه بودر میشه سرمایه میلی بیشتر میشه مردم به قهقرها بیشتر بر میرن ولی هی خونه رو نداره، هی تلویزیون میخورن مردم هی مدل اپارتمانو، و دکوراسیون و ماشینشون بالا ولی همه اینا آتیشه انسان آتیش گرفته انسانی که سوخته از هیچ کدوم از نعمتهای زندگیش نمیتون کنه تبار ماشین میاد می تیزاتو چپ میکنه. برای آتیش اون که بگم لرندوم آتیشی آتشیه آن... ببین آتشیه است. آتش و این تصوری میره آنها. خب، ببین پس وام خودش ایجاد میکنه و بعد خیلی جالبه خیلی این حتی ما دیگه با خیلی مسئولیتی راحت می‌دهم. و بله مردم مثل یک شده. میگن آقا جون ما کسی که مزبا منگیه و شرکت میشه چرا وجود داره؟ چون وجود داره. ما الان یه بدونم بامیدیم. یه سال دیگه یه بدون گیز داشتند وقتی بخوانم برگردونن آها، من وادام سود کردم. چرا؟ برای اینکه یه بدونی تو من یه سال دیگه اردش خریلیج پنساز داشت من. معلوم است. یه خریلیج میخوام، یه فرش میخوام، یه بدون تو من. این فرش سال دیگه دو بدون تو منه. مگه من امسال یه سال دو بخرم، بناه من؟ چرا؟ با سال دیگه دو بدون تو, دو تو این فرش. من دیگه باش بر میدم هر صد به نفره بعد خدا من نرفته ات سودم کردم ببین چقدر خوبه منطب نیوکنین متزی نمی که برای چی این فرش شککر یه می توانان سال که اینو کی درست کرده شک از که که اوقا این روخدهبان که درست کرده خد روای که من درست کرده خد روایکن درست کرده خ روای درست کرده و برای اینکه تر بده کهه به بیشتر میدم. بیشتر نمی‌دونم برای جناب یک بار برای این مشکلش یه وام ما می‌گیره کذ یه یه بار وام گره دیگه مبتلاس وام دیپ 5 ندون وام دی 5 هم دو در این 5 حضور مردم ببین برای نجات از تورم به تنهایی دیگه وام که وام کذ باز هزار بذاگونین خودانگه ایجاد نمی‌کنه اصلا کی تورم وجود رو تورم خود بانکا و وام دهنده وجود بردن و بعد برای علاج این تورم باید می‌گنم بیشتر بگوید بام بدیم مثل مثل این مروح بیه که روکتش هر ایتی دادیگ نگرد با نشسته بود قمگی می‌بود داشت گله می‌کرد ازش برسته آقا چرا غمگین رو گله می‌کنی؟ گفت چیز عرق خوردم خب برای چی عرق خوردی؟ گفت برای غمگین بودم عرق خوردم چون قمگی بوده عرق خوردم با با داشت عرق خوردم غمگینم حالا وام همین دوره اینا وام توررون اللت و معلول هم هستن هرچی که معلوم بیشتر وام میگیرن توررون بالا میره هرچی که توررون بازا میره باز, می باز راقی میشن که برن وامهای های بگیرن هی ببین؟ وام توررون توررون وام وام توررون توررون وام این دوریه که راهی جز به جهنم نداره <تصفيق> اولا یه مقدار این قضیه ربا رو با تینیتر نگاه کنیم. می بینیم که منشای ربا از شرک و نایتن به کفر خیلی خب، انسان به میزانی که خداوند رو غذاب خودش می‌تونه، از این ایمان داره و مثل این گروه از بنی اسرائیل نمیگه یه دست خدا بسته است و خدا دیگه نمیتونه به ما روش بده بعد دیگه الان این منطقه بنی اسرائیل هزار سال پیش که گفتن که دست خدا بسته است دیگه نمیتونه با بده الان هزار بر منطق فعالتره یه درسته دست خدا ولی فقط خدا نمیتونه به بز ما بده پس ما بسیعه حال بکنیم کار چیه؟ روا تا عقب نیفتیم از زمانه. ببین خود همین شرک و سرو به خدا خودش منشه رباست و این ربا خودش تتمی اعتقاد ایمان را نابود میکنه ببین ربا بیقراری میاره، استرس میاره، نگرانی میاره یعنی انسان را از خودش بیگانه میکنه انسان را از خودش دور میکنه این منشه کفره و بیگانگی یه بی انسان هست انسان هر چی در این استرام و دغتر و فونیره روز بروز دروقه هم باطلن کافرتر میشه هم در عمل بزهکارتر و تبهکارتر و گناهکارتر میشه ببین کسی که استرس داره در زدانه خواب و خلال آرامش نداره نیازی به آرامش ذاتی ترین و واجب ترین نیاز انسان برای زنده بودن اصلا خب تکار این کسی که قرق در رواه و همش نگران یه چکوز افته و فدهی داره خب آرامش خودش برای در خواب راحت کردن و کابوس ندیدن پس گرس آران باش بخوره باستی هم با اصلا مواد مخدر مصرف خونه ما هم مخدر و ایتیاد مگه از های جهانی نیستیم به شکلی مواد مخدر رو فقط تریعا که بیچاره ندونیم این هم داریو شیمیایی که یه بار مصرفش کافی انسان نابود کنه تریعا که پیش نقل نبات اصلاح میشه اگه این هرم به اصلاح ا اینا همون کار رو دارم میکنند منطقه قانونی هم باچاقی فقط فرقش اینه که این راحتتر پیدا میشه و از اونتر میشه فرق فقط در همینه که آسانتر و راحتتر پیدا میشه و توجیه قانونی و علمی داره ببین این همه گراجمان مخذر و دال و روان روانگردان تمام روان پزشکی ها پر سطحه یا دیوانوخانه ها پره زندن های ما پره بریم و, کنیم زندگی، و این همه. سر از بانک و ربا در میاره تمام کسایی تو زندان هستن و تمام کسایی تو بیمار سال و هستن و تمام متعدار ما بریم میبینیم همه در گروه بانکه روحشون در گروه بانکه اینا. ایمانشون خدایشون در گروه بانک این بانک ها این ربا ها ایمان و حسیت و شرف و عزت و ناموس و همه چیز انسان رو برباد میده همه چیز برباده فرهنگ ثبات بسای مسئولیت فرهنگ و بی بی‌هویتی و این که چرا مردم اصلا کتاب می‌خونم دو تا آمار کتاب خوندن در کشور ما ها کمترین آمار در سطح جهان این خدا مسطر بیا روزی گفت تنهایی نجات ایران و ایرانی ها ایجاد اقتصاد منهای نفت یه پیشگمیه واقعاً بود بنابراین اون جامعه بشری موزه روزه و ما اگر در این اون مزفصادیت سردست داریم هستیم با خاطر پول کلان نفتی که این روزه دیگه آره به صد دلار کم بالاتر بفتیم. بنابراین این همه فسق و رو گناه از رباست ایمان رو آتیش میزنه دل رو آتیش میزنه هر چیزی که انسان بیقرار کنه به استرس در را بندازه دشمن ایمان انسان دشمن سلامتی تنوربان که بخوا آمار وزارت بهداشت درمان ایرانی ها بیشترین مصرف کننده داروی در جهان هستند. و یعنی شید یه ریکول جهانی دیگه و این داروی همه مسکره نفر در در دسته داروی مصرف میشه آران بخشوی خواب نداره. یعنی هیچ کس خواب نداره, مردی که خواب نداره آسایش و برزن و بچه جمعه میکنه قبیم این خانمان سوزه و دشمن ایمان و دین و ناموس و حسیت و فرهنگ و تربیت و آسایش و سلامت و همه چیز. پس یکی از بزرگترین حلل گرایش به موادی مخدر که از آن اعتیاد هم غباست این دستاری جهانینه در کشور مجرس برای ما این گناه و عبش هزار برای برنابخش دنی برای ما مسلمانیم. و رباشن هاستیم حدیقا از شرعی و در مایدینی ما ربا رو حلال اعلام نگردن پس چون ما دینیز میدهی داریم مسئولترین بنابراین عذابی که از بابت این قضیه به ما میرسه هم عذاب بابا شهیدتره برای که ما چون داناترین پس عذابی هم که از این بابای بر ما فرود میاد شدیکتر. چون میزان مسئولیت انسان میزان دانایی انسان، آگاهی انسان. و ما شاید یکی از تن یکی از تن کشورها و ملتهای هستیم که حداقل دقیق از, از وقت شرعی ربار حرام می دانیم گناهان کبیره می‌دونیم. کبیره یعنی اگر از روانشناسی روانشتراسی اجتماعی نگاه کنیم تباهی که کن از ربار در میاد بدتر از گناه از زناه خود بخش عظیمی از زناکاری و مفاسد اخلاقی خودش حاصل ربارست ببینید از روزها مشخصه ما می‌دونیم یک انسانی که یک مردی که دغدغه داره دو ناتوانی جنسی میشد تا دغدغه هستید، آخرین شدگی جنسی پیش می اومد. خب این یعنی چی؟ یعنی این جنسی جنسییی میشه؟ این یعنی چی؟ یعنی همسرش اصلا چه باشا میره. ببینید. آه. به همین سادگی دو تا چهار تا واقعا همین همی ارتباطات زنا، فحشا، طلاق و اتیاد با روا چه ارتباطی مسترمه دنگوزنگی داری ارتباط دوزوجاردتایی داره با همین درمین خیلی جالبه حتی قاضو و حسنه ایم که قلوم سمنار رو که مردم یه مقدار همین اتفادی دینی دارن نشونده میخوابونن برای روا بگیرن قاضو و میدن میگن سواب دارن این بانک اومدن به فساد کشیدن از طرق جایزه دادن ها مردم وصف تو دیگه نه قمار, قمار دیگه چای تو قماره چه تو بیتی به خدا از مایی قمار یه این قمار نیست قمار دیگه یعنی منظور قمارباز می کنم در واقع خب قمار هم ما می‌گیم که یکی از گناهان کبیره است کبیره قمار زنا ربا و عشنابخوری اینا چهار تا گناه کبیره ای که تو قرآن اسم برده یعنی کبیره ترین یعنی کبیره یکی از جز اون جزء مشابه نیست تو چه بازیه باشه یعنی چبیل‌های آبادیست ها و ما اینها بهش مبتلا هستیم و می‌بینی که منشأی همه اینا می‌بینی زنا و فساد اخلاقی دوزی دزدی فساد جنسی بابا همه اینا منشأی اصلیش در این شرایط رباست رب خببن انسان به میزاني که بس همه انا از یدات میجو فت توکل نداشتن به خدا و ایمان نداشتن به خدا به عنوان رزاق عنوان رذاق یعنی ترس از اینکه من گشنه بمونم ترس از اینکه بیخونه میشم خونه نداشته باشم نشانه نشان من چی ی مج همین خوب ولي ما شبان روز داریم قرآن میخونیم نواز میخونیم و ز خدا پیغمبر صحبت میکنیم ولی عمل ما تماماً کفره خب نفیزه چی میشه؟ نفیزه میشه نفاق بیحقیتی دروغ، ریاکاری. آقا ببین؟ یکی از ترین فرهنگی جهان رو ما داریم چرا اگر ما این اتقاد و دین مستنوج نراشتیم خیلی مشکلمون کمتر بود چون داریم، ادعای دینی و اخلاقی و انسانی داریم عمل ما تماماً کافران است. این میشه نفاق نفاق چیه در قرآن؟ این مناطقی یعنی پس در این نیستن دیگی ها ملوط منافقی نیستن بلا همینه که اکثر مردم ها آرزیشون به هشته گمشدهشون بروف آمریکاستن چون اونجا دین و ادعایدین و خدا فیغامر کنم بذاشتن کافرانتر زندگی میکنن دزار راحت تر زندگی میکنن چون خود ریا و ریاکاری بزرگترین هزابه جان کندن دو شبق شدن، ببینید همه اینا نفاق میشه که با قول قرآن شریفتری ک نفاق بود. ببینید همه هر انسانی که بدهکار شده باشه میدونه دار بودن و بدهکار بودن چه از آدم سرطان داشته باشه تحملش راحت داره. یه داغی از عزیزان وارش شده باشه برای شما تحملش راحت داره. بهتر میشه، بهتر میشه، باشه, باشه. کنار آمازه یعنی واقعا آتیش میزنه یک درد بیدرمان فضاینده ایست ببینید یک عذاب فضاینده است بس. حالا این به جای باشه که معتیم این دردیش اضافه میشه این قرد ثابت نیست سون هر دیر سر میشه دیرکرد داره ببینید ببین چه عذابید بیخور نیست واقعا ما در دعاهایی که داریم از, از امام، سجاد یکی از مهملیترین دعاها مربوط به ادای قرض میشه ادای قرض میشه این انسانی که قرض داره قرضی که طرفش آدم نیست که آدم بره به دستگاهش بیفته که مرم کن با هم بیروه آدم نمیشنسته که حالیش نمیشه ما گذشت هست امالتون مصادر آقا کاریتون مصادر زندان دوام شده یعنی بیرحمه قصی و قلبه دل نداره بانک، برای که فرد نیستش که تو با فرد که درف نیستی اونجای مشکالمندش از داره مهمور مرزو پس ببین چه شیطانیه وستقصه یه غبا چه آتشیه آتشی که تن و روح و خانمان رو برواد میده اخلاق و قداست و اسمت و شرف و حیثیت و همه چیز رو بر میده یعنی هیچ گناهی اینقدر جامعه و شرائط و کسی رو دمیتشار نیست هیچ گناهی کبیلتر کلامتر و جامعتر و ذاتی تر از روانیست شما هر گناهی رو دیگه یک بخشی از زندگی رو برباد میده توانی کنه هیچ چیز اینطور نیست که تمامیت زندگی رو برباد داره ماده و معنادین و دنیا خاندان و فرد و تن و روح روان انسان رو به آتش میکشه در هر روستای خوریده ای یه بانک دو تا بانک هست و جاغه به نگاه کنید ساختمون و تشکیلات و تنسیخات اون بانک ببینید از کل روستا گرم انگار این دخنه شیطان یک کل روستا رو داره می‌بند داره شما نگاه کنید؟ شما نگاه هر جایی که یک اولین شبه با در یک رستایی برپا شد در سال دیگه ما میدید در روستا همین رو فساد فراقی پیدا کرد سلامتی، شرافت صداقت از اون روستا هست و مردم همه دیمونو زدن نیگه در حقیقت تمدن آخراززمانی تمدن بندی سرائیلی غبائی است آتش دوزخ آخراززمان آتش بانکی. شما نیگه کنید سابق رو با اون عظمت که اول جهان بود و حتی از آمریکا در خیلی زمین ها پیشتر بود برتر بود نیگه کنید چه چیزی کرد؟ هیچی که از شوراقی سابقه نکرد خود سرانه شوراقی سابق ایدولوگه هاش اومدن دست ایدولوژی خودشون کشیدن چگونه کشیدن؟ تا خرخله به با بانک های غربی به دکار اونها به یک رقم فکر کنم یک رقم علنی 180 میلیارد دلار به صحبت 20 سال پیش به دکار اونها 20 سال پیش خیلیه رقم بشن. یعنی اومدن اینها معامله کردن با امپنالیست های امریکایی اروپایی گفتم ما دست ایدولوژیمون، دست از و دست از اعتقادمون، دست, دست از نظاممون میکشیم شما بیرید این بامه ها را به ما ببخشید از ما نگیرید همینطورم شد اینا این بامه ها بخشیدن استخابت فرم بیدن. اونا هم دست از انقلاب و دست از و سوسیالیزمی که 78 سال براش این همه خون دادن همه کشیدن به سه شماره شدن مزدور و کارچاخون امپیلوریزم غرب و امروزه از خود غربی ها میناه فاسدتر تباهتر اخبار شعرابی و جمهور شعرابی ما میدونیم دیگه چه خبره آره. الان شعرابی بزرگترین قلم روی حکومت مافیای بیرون مدلی است. بیشترین حد اقتصاد ما میدونیم وقتی که فرو فروباشید یعنی اینا ایدالوژیشن رو فروختند به بانک های اروپای آمریکایی معدوم شد که شهست میلیون الکولی سفت و میلیون پروینی و و الستی و نصف زنهای روس روسی شده بود این نتیجه ریبان بود خب ببینیم پس دارن بانک ها چه کار میکنن در دستت جا خدا و دین و اتقاض و مقدس و همه چیز رو از ملت ها دارن میکرم به برندگه در واقع ما چه مشکل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و روانی و بداشتی و درمانی و دینی داریم کارخانه اصلیش رباست ربا چیه؟ بزرگترین گناهانی که در اسلام و در دین خدا اومده خب بنابراین ما از اصول دینمون در واقع ادول کردیم افول کردیم و بزرگترین گناهان رو توجی کردیم و خلاشری ورش درست کردیم ظاهران به یک از گناهانی در دادیم ولی از این طریق و همه گناهان دیگه مبتلا شدیم باز دین و و مسلمانی مسلمان میفرنگشاره جز ادعا و حرف توخالی هیچ چیزی برای ما بابین نمان بنابراین توبه از ربا بازگشت به خدا بازگشت به دین ایمان به خدا به عنوان نه ایمان به بانک با تراز بانک ها هستند خیلی جالبه اخیرا ما دیدم که تا بیمه ها رو میخوان اجباری کنن بیمه اجباری یعنی آقا که خطر نداره به خدا توکل کنه. همو واسه دیدیم ما توکل کونم از این دوما تا کسایی هم به مسیحیانه جلو افتادیم منجا فکر نکنم همین بیمه اجباری شده باشه آقا یکی میخواد ثروتشو ببینه نکنه توکل تره با خدا وقتی خطا میکنه نواستی توکلتون به خدا اینجا یه خیلی جالبه اینا قوانینیه برای علیه خدا دار واقعا بر دین مردم، برای علیه ایمان مردم. اینا قوانینیه که واقعا این قوانین جنگی با خوده بیمه اجباری جنگی با خود و خدا و ایمان مردوم یعنی بیایید به بیمه ها امیدوار باشید تا از بیم ها و حراس ها شما را نجات بدیم تا دلتون رو کنیم مانید گرس کنیم. اگر ربا ها و بانک ها دل مردم رو گرس کردن بیمه میکنن. هم این کار بنابراین توبه از بیمه و ربا توبه از تمام مفاسد و گناهان و کفر اموزه در سراسر هرکی بر بیمون باقواله شد بر شبکه جهانی سعیونیزم و امپلولیزم جهانی والد شده و اراده و بیمون مسلمشت خودش و خاندان خودش رو به دست شیطان سپاده و سلام.